بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانان محترم یکی از موضوعات مهمی که بر هر مسلمان دانستن و عمل کردن به او و اجتناب از بدیهای از او و فامیدن و معلومات داشتن درباره زررهای از اون که موضوع مهم روز است موضوع قومپرستی و نشنلیزم است خداوند متعال جل جلوه از خلقت آدم علیه السلام شروع زمان آمدن حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و در اصر امروزی تمامی انسان‌ها را به شکل مساویانه خطاب کرده و در کتاب‌های الهی همیشه انسان من یک مخلوق با ارزش الهی خطاب شده این خطاب الهی برای انسان خای انسان سیاه پوست باشه یا سفید انسان به هر زبان و به هر نژاد و از هر قوم و از هر کار و از هر جایی که باشه اینجا خطاب الهی بر از اینا به شکل مساویان است وقتی قرآن از مشان باز میکنیم در مصطفی اولش گفته که الحمدلله رب العالمین بنا ان خداوند رب العالمین گفته و در عالمین تمام مخلوقات داخل میشن و وقتی که خداوند خطاب میکنه برای ما شما یا ایو الناس میگه که یا ایو منظور از مردم تمامی مردم هستند جهودا تعصب کردن و به اساس تعصب که اونا داشتن دین خدا را مخصوص قوم خود ساختن به اینا منحرف شدن اینا تعصب کردن و دفتن که ما از خاندان و از قوم خداوند استیم و دیگر که هستن دفتنی مثل حیوانات در خدمت ما هستند. اینا از دین خدا منحرف شدند. وقتی دین مقدس اسلام و قرآن از عظیمش نازل شد، بر مردم حکم خداوند متعال جل جلاله آمد که یا ایه الناس اننا خلقناکم من ذکر و انثا ای مردم ما شما را از یک مرد و از یک زن خلق کردیم. و جعلناکم شعوبن و ما شما ما طایفه طایفه مردم مردم ملت ملت و قبیله قبیله ساختم بخاطر ازی که یکی دیگه تانه بشناسین خب خدایا بهترین ما است هست معززترین ماکی کسی که پیشتون مقام عالی دارکی هست خداوند متعال با سراحت ایره بر ما بیان کرد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین شما به نزد خداوند متعال با تقوا شماست در روز فتح مکه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و salam نخصین اعلامیه فتح مکه را بیان میکرد و او را توسط آزان اسلامی بیان کرد اوی خود در داد به طرف دلال حوشی ببینن ابو تمام صفات داشت ابو عربی بود قریشی بود مکی بود از خاندان پیغمبر بود لیکن همه صفات و همه لقب ها را داشت یک لقب نداشت و یک صفت نداشت که او صفت،, صفت ایمان و تقویز و برعکس از او، دلال هبشی هیچیکی از این صفت ها را نداشت عربی نبود قرائشی نبود مکی نبود هاشمی نبود از قبو پیغمبر نبود سفید پوس نبود از نجار پیغمبر نبود یالو باو جودازي تمامی لقب هرانوش يک لقب داشت که اون لقب ایمان و تقواس اونو توانست که اون نسبت به همه برتر بسازم پیغمبر صلی الله علیه و سلام اشاره کرد به طرف بلال که ای بلال قبورو سر با و اذان بده و نخسین اعلامیه حکومت اسلامی در فتح مکه اعلان بگو بعضی از عرب هایی که انوز ایمان در قلب ازنا داخل نشده بود اونا گفتن که ما که تو پیغمبر خورایی ای پوسته ایرانیش میکرده و اخیا پوسته میگه که تو برو ای آزانه بده و, و از بین ما صفیت پوسته و از بین ما حاشیه ها و از بین ما خورایشی ها و از بین ما عرب ها و از بین ما صفت پوسته و از بین ما فصیح که در زبان عربی به بسیار و بلاغت صحبت میکنیم اختیار نکرد پیغمبر صلی الله و علیه و سلم بر شان که ای مردم خود خ بیان کرد که انسانها در مقابل خداوند متعال جل جلو مثل دندانههای شانه وارد لا فضل لعربی علی عجمی هیچ عربی بر هیچ عجمی برتریت نداره ولا فضل لابید علی اسود و هیچ توست برتریت نداره بر سیاهپست الا بالتقوی مگر بتقوا اگر ایمان داشتی و اگر تقوا داشتی هیچ لقب دیگری نداشتی پیش خداوند متعال جل مثل حضرت بلال عظمت و برتری داری و مسلمانان ها برق رضی الله و هیچ اگر تمام لقبار داشته باشی مثل ابو صف صفیت باشی زبانت زبان پیغمبر زبان باشه قومت خوب پیغمبر باشه هاشمی و قریشی و مکی همه صفات داشته باشی اما ایمان نداشته باشی بالای تو آیت قرآن کرد تو صفح میکنه که سید سلام نارم ذات لحبی ابو داخل آتش میشه تمام لقبها بر ابو لحب پایدنه کرد چرا چیزی که خدا میخواست او را ابو نداشت تمام صفت های دنیا داشت لاکن صفت را که خدا میخواست او صفت را نداشت بسیاری از مسلمان ها مشکلشان در چی هستن؟ اونمو که اوناها در قلبشان ایمان داخل نشده بود در قلب از ایمان به شکل درست داخل نشده به خاطر آیت قرآنه که میگه و اقیم و نماز نماز بخانین پنگختوزو میکنن نماز میخانن سجده میکنن و وقتی که بارش میگه اننا اکرمکم عند الله اتقاکم با ذی قرآن عمل میکنه بسید یایت چطور عمل میکنه که خدا میگه که بهترین تان با تقوی است یا میخیزن نگه نه بهترین تان پشتون ها میگن پشتون است تاجک ها میگه تاجک است ازاره ها میگه ازاره تانست ازبک میگه ازبک از ازی خاطر زب به آیت قرآنی ادعا میکنه پس اینی که ایمان در قلب ازی داخل نشده اگر ایمان قلبش داخل می شد خداوند بگه یا ایوه الذین آمان ادخولو فی سلم کاف ای مردم که شما میگین ما مسلمان هستین در اسلام مکمل داخل شبین ادخولو فی سلم کافتن ولا تطبی و خطوات شیطان و شما پیروی از گامهای شیطان نکنین اگر از گام شیطان است که انسان رو به شکل از اشکال قوم پرست می سازه زبان پرست می سازه ز... سمت پرست می سازه او کسی که قوم پرست شد خدا پرست شده نمی تانه او کسی که بگه من وطن پرست است و مثلای کمونستاست مسلمان وطن پرست نیست وطن دوست است مسلمان صرف خدا پرست نی باشه صرف پرستش خداوند متعال جل جلوه رو جل میکده اما قوم و زبان و وطن فرستی و یفار نمیکنن پس امکان نداره که انسان هم مسلمان باشه و هم نیشنالیست باشه هم قوم فرست باشه این مردم خودفرید میتن و در لباس اسلام بی ایمانی را نشر میکنند. زرار قوم پرستی و نیشنالیستی برای مسلمان ها چی چی بار آورد داشته در عصر امروز؟ نشنالیستی کسانی که امروز ادعای نشنالیستی می کنن اینا چی نفرستاندن به کشورهای اسلامی چی نفرستاندن برای وطن خود چی نفرستاندن برای اسلام اسلام که از بین بود تو حکومت اسلامی را خلافت اسلامی را کی از بین بود به این ما شما در از یک پین در بکنیم آخرین خلیفه اسلامی عبدالحمید الحمید نام داشت سلطان عبدالحمید در ترکیه آخرین خلافت اسلام آخرین خلیفه مسلمان بود سهیونست هزل یکی از دنگوطارای حرکت سهیونستی این حرکت سهیونستی را او تو کسی که تمام یهودا از تمام کشورها باید به فلسطین بدن. شاید یک یه یهودی دینش یهودی خود دین است پس این یهودی که دینداره است میشه افغانی باشه حتی در افغانستان یهودا وجود داشتن در سابق او جهود میگفتن در افغانستان مردم های کسایی که سنشان بلند سنا اونا نوعی در افغانستان که وجود داشتن یهودای کل یهود میگفتن. در تاجیکستان وجود داشت، در وجود داشت، کشورهای اروپایی و آمریکای یهودیا وجود داشتن، اونا خواستن که این دانش سرطان مردار که نمیخوان که در هر جایی که باشند اونجا باید را جراثرسانند. در هر کشوری که باشن مثل دانه سرطان است اروپا گفتن ای دانه سرطان کجا انتقال بدیم گفت بیان با علسل وقتی که ای حرکت سهیونستان را تحسیز کرد اونا نام رایشان هم کاری کردن روان کردن سهیونستان را به طرف فلسطین و پیشیزی که با فلسطین را آن بکنن در وقت سلطان عبدالحمید که خلافت اسلامی بود فلسطین یک کشور اسلامی بود و اونجا یهودا هیچ کار ک بناخره یک کسریه کردن به نام قراسو قراسو یک تجار یهود بود آمدش سلطان عبدالحمید و معلومه سلطان عبدالحمید یکی از دربارش یک کسی از جمله مسلمان‌ها واسطه شد برای قراسو و قراسو آمدش سلطان عبدالحمید و برد که مبلغ 5 میلیون لیره‌ی طلایی 5 میلیون لیره‌ی کوفار نفت برای خودت میتون <تصفيق> یا به میلیون و یک قرضی برتان میتون سلطان عبدالحمید که مسلمان بود فامید چه کشور در کشکار در پرانتگ بایگر یافت نمیشه برای چی یافت نمیشه؟ خاطر ازی که مسلمان که اگر یک رو بابر اکتاقید با اساس که داره که من اگر یک رو پید دنیا نتم خداوند دان دان دان چن مزور واقرات یک طرانتوری بیمار وقتی که نفر بمره یک به برای ان وطن خود نميته در امریکا هوملس ها کسایی که بیکاره و بی فامیلتن در روی سرک میمرن موذای چونن در میته برایم چوری یک برتک اس نميته برعکس روی 1 میلیون میته خرق بوی انسان به بم السلطان عبدالحمید کرآن خونده بود و همه که چی پرنداره کارشو کارکنان پول دارند که توی 5 میلیون لیره برای ما مفتوحیتی لیره تلوایده و 100 میلیون دگیره که برای ما کمک به لواط در مقابل چی گفت اینا بر شما میتونم به خاطر از ای کارزه اینا بر تون میتونم شما برای ما یک قسمت از سرزمین زمین فلسطین بدن که ما دعوی هم حکومت اسرائیل تأسیس بکنیم. سلطان عبدالحمید بترست و همین مسلمان که در بر بارش آقا با گفت فهمی که خینزید چی میگه؟ تو می که خوب چی میگه؟ گفید میگه که خاک فلسطین ها بر من مفروش و بره قرسون که او قرسون تو می فهمی که خاک فلسطین به خون مسلمان ها گرفته شدن دوست سال جنگ های سلیمی کردند تحت شهار سلیم دو سال زد سلیب جنگیدن تا بالاخره که ایر تلاهودین ایوبی از دست ها گرفت و کدس اونا نتانست دیگر از سهد سلیبی ها این فلسطین به خون مسلمان ها گرفته شده شما سهدینست های اسرائیلی ها میخوند که ایران مرد پرد دارن تا که خونتان همه ریزارین ایران را گرفتن میتونین دیگر خود ارزل آمد پیشش ارزل محسط حرکت سهیونیستی آمد پیش سلطان عبدالحمید سلطان عبدالحمید ای را هم از دفتر خود با اونمو پسیور رضالت زلیل ساختش و از دفتر خود کشید شد دیگر روز از ایتالیا برای خطر آن که که سلطان عبدالحمید تو خیلی گفت ما را قبول نکردی ما اینا را دستائیس مختلف را برات میسازیم تا ای که ماتر شکست بتیم صحیح نیستان رفتن پیش پیش روبای کمپیر پیش بریتانیا پیش رهبران بریتانیا رفتن که شما خود در دستی سازی و استعمار در تاریخ نام پدر و پدر کلوهایتان به خط سیاه کلان نوشته است بر از گفتن که انگلیستان خب در کلانای شما تروریزتای درجه یک است ام تروریزم سیاسی ام تروریزم بینه مللی و ام در نگاه تروریزم فکری شما مداد کهرمانی دارین شما برای ما ره نبایی کنید او برگید که عجب شما اسرائیلی مثل ما انگلیستا واره ما سیاست داریم که تفرقه بر تو حکومت کو. تفرقه بر تو دوید مسلمان ها. حکومت کنین چه کسی؟ برشان باید نشان شما برین در بین مسلمان ها حرکت های قوم پرستی نید کنین با اصاب قوم و زبان و ملت و ایگفا در بین مسلمان ها احضاب تحسیز کنین تا که مسلمان ها در بین خود یکی دیگه خدا بخورن وقتی که اینا در بین خود خوردن باز شما میتنین که اینار یک یک کلیشان اگرفتا و برویده و کشورایشان تحت تاثیر تان داره و در بروشایشان القیق غلامی در بند کنین سهیونستان آمدن در بین ترکیا و با کشورهای اینج در اینجا که خلافت اسلامی بوده از چندین کشور در اینج اشتراک داشت اردو اسلامی که اثر زبان اردو را برای عضو تاسیس زبان اردو به عنوان یک زبان اردو برای لشکر مسلمانها برای فوج مسلمانها بر قوت های مسلمانها با یک زبان باسان با تا کل اردو یاد بگیرن خب وقتی که این اردو اسلامی بود در او عسکرهای تمام کشورهای اسلامی وجود داشت از هیچ کس نمیشناختم مقابل خلافات خلافت اسلامی بخیده خلافت اسلامی در اوج و به معنای اتحاد کشورهای اسلامی است گفت شما اول که مسلمان را شکست میدین اتحاد کشورهای اسلامی را شکست بتین شوراوی بران اتحاد جماعی روی سوشیالیستی جور کرد امریکا ایالات متحدی امریکا متحده ایالات ها رو متحد ساختند. مسلمان خلافت اسلامی داشتن بران ات... ات... اتحاد کشورای اسلامی گفتید باید شکست بتین و اروپا کار میکرد تر اتحادی اروپا کنگی باید متحد شود لیکن دشمن ما که مسلمان هست ای باید از بین بره قسم آمدن برای ترکا گفتن که شما ترکا هستن و شما مردم های از هستن سلطان عبدالحمید دیگه که را بزدار عربا را خوش داره و عربا را زیاد تشویق میکنه و یعنی وقتی که اتحاد بود مجبور یک وزیرش عربی باشه مجبور است یک وزیرش ترکی باشه مجبور است یک وزیرش افغانی باشه خب اتحاد است قاطنیه سلطان عبدالحمید ترک‌ها را زیاد خوشحال و شما عرب‌ها را زیاد خوشحال و شما ترک‌ها زیاد کلرات نمی‌بخیزین برام قومیت تورانی شما بکیزین بازده سلطان عبدالحمید خیلی تن حرکت قومیت تورانی را در ترکیه جور کردن و کار کردن و اینا تمام روزی هم که ما عربا رو نمیخویم و ما تر. اومدن بر عرب‌ها چی گفتن؟ اینا نیست زنجونستان، گفت که شما عربا و قرآن به زبان شما نازل شده، پیغمبر عرب بود، شما ترستان فلانی سن فلانی سن از این طرف دور دادن. این طرف حرکات های قومیه عربی جور شد، به این طرف حرکات های قومیه ترکی و قومای دیگه جور شدن با اسباب قوم و زبان پرستی، سلطان عبدالحمید ضعیف ساختن در بین خلافات اسلامی جنگ طلا پیدا شد خلافت اسلامی را اینامید سه قط دست خدای کردند، سه عنصر صلیبی های انگلیس صلیبی های انگلیس صهیونیست های اسرائیل و نشنالست های ظاهر مسلمان ارسید یا دو سکوده یک یادن اتحاد کشورای اسلامی را سکود دادند. وقتی که اتحاد کشورای اسلامی سکود کرد اسرائیل، انگلستان درشان دفع ایناله یک نفر از یک یهودی که یهود دونماس ای باستفاه که ایره اطا ترک میگن اطا اصلا اصلا اصلا ترک هست دروغ مگر ترکای مسلمان که بگیر یک خبیصه اتا اتا امانید خبیصه لکرم مثل بابا ملت مثل که نصر مابا شما از بابای ملت ساختگی بزور آورد تمام روز بشگیر خدا با ایتالیا ترکت نواسه ایتالیا اونجاست آمد شما بابای ما شد بابای ما خدای چوره نکنه هر کسی که باباگی خوشش داره اون رو با چوی بی بی خود ساخته این مانا رو میتنه خدا رو کسی که از اون نه نه نه مادر کلان ما کنه نه پدر کلان ما کنه. باید از این صد اتا سرک همی سیاست انگلیس دیگه را مت انسان های انگلیس سفه که ناره به سفه چیز تایم بکر بلاخره اتا سرک آوازن اتا وقتی که اول مردم میگبتن که قهرمان هست یه چطور است یه مجاهد هست فلان هست فلان هست بلاخره ایرمی اتا سرک وقتی که قدرت گرفت گفت که دی از سیاست ترکیه رو جدا شود حتی علوای ترکیه که بید علوای ترکیه مثل علوای ما شما رو نوشمه شد لاتین بسازین تا که مسلمان ها تاریخ خود خواندن نساند امروز زمان ترکی مثل کردوسا در تاجکستان علوای ترکیه رو علابت است اگر اجاکات نشد چطور است ما میگوییم البته تغییرات مشکلات روزگاری که اجلان اینشات چطور چی بوده و وایرا اجازه کیش نشه کنه ارطای ساخته باید شورای کردم و ترکیه کمال اتاتورک این قسم کرد در اخره اینی سه اونصدس خورایوی کردم اتحاد اسلامی را از بین بردم و تا امروز این که دو کشور اسلامی به هر شکلی که می متحد نشن. و این چک البواد ما اینا رو نمونیم که دو مسلمان یا دو کشور اسلامی ونا بین از اینا انگلیس ها بعضی مناطقی را که باعث اختلافی باعث که باعث یکی در زندگی خود جنگ داشته باشه یا با داوا داشته و یکی دیگر را بکشم و به این شکل چیز کردن این اول نتیجیش نشر چی بود اونمون نشناست صدام حسین صدام حسین آمریکا اون را برای حزب تایید تعیض میکرد که تو واقعا بعد چی مون از زندگی شدن بعد از مرگ صدام حسین یامه گفتن حافظ لطفی در سوریه میگه ما از بی باز درin، ساده مسایلی بی باز به بی باز شیم از باعرب ها دوباره از مرد زندگی کنیم. شکستن نام اولاد های که ایواز کرد، نام اولاد های محمد و علی و ابو بکر و مردان، نام اولاد های که و ابو جهل و قصیو و عدائی میمونن، نام که او از جهالهای قبل از اسلام بود. یک ما میخوایم که از اون موقع های قبل از اسلام باشیم و اصول ده اسلام کار نکرد ازی خاطر خطر تبرم و چندین سال بزد د جمهوری اسلامی جنگان و روزه که مسل... یا یخو... کرا میگیرن مسلمانا رو بیچاره مسلمان بیچاره مسلمانا نمیدونم شهرت کرا گرفتنشه وقتی که اهداف خدا برآورده کردن به ذوق که صلاوی اتمی ندارن اگه صلاوت نمیذیش بهش نزدیک نخواهد که نذار چیزه اینو است اینو نوکر است نوکریش پُراست شد که کت... کت مخدرات کار میکنه وقتی که روزی درست به صدام موساین بودند در زیرخانه و بانش خوبش پش بودنش بازدوره کشیدن بعضی باز مردم نشان دادند که یه نشیزد. بعضی دیدند که چه کسی مظلوم شد. مسلمان این کسیم زلیل چه او خداوندی از مسلمانانی که تمظلیل می‌کند، چون او ضد قرآن کار می‌کند، صدام موساین. حتی من از زوجت و زنر جزیره قرآن جمشید که تو خون خودش شکرده بود، و خونش چیز مرجار است. و خداوند مظلوم شد. و خداوند از بین بودشان. و خداوند تبارش کرد. چرا؟ بخاطر ازید که اینا کسایی بودن که بخاطر از اونا حرکتهای قومی و حرکتهای نشنلستی و حرکتهای زبانی رجود کردن هر جوانی که هر جوانی که میگه ما مسلمان هستم مسلمانی ایننی است که ما بگم که یا ایوهن ناست اینجا خلقناک رو منزه کردن و انت ای مرد ما از یک مرد یک زند کردیم پس دیدم که اکثر وقتی که رهبر ملیتی بود میگفت میخوای که کسی باز حکومت بکنه که آریوبی باشه آلمانی باشه چشمای سازد داشته باشه چهره سرخمویری زد داشته باشه بلکه اطلر چی کرد؟ اکثر زد جنگ اول دوم جهانی وقتی که شد خود برلین سکت کشید. تک بلکه اورپایا دیدار شدند وفادار شدند که ماهالش کس خودم بشارت کامپراسی آلمانی بودن ما را داشت کامپراسی از یک پاد توبه. پس آماده عضو اتحادی اورپا شدند. با چندین زبان در اروپا با هم یکی هستن بول خدا یکی ساختن لشکر خدا یکی ساختن عسکر خدا یکی ساختن کماندانی رو یکی از اروفایی از یکی از کشورها میخواه حتی ویزین یکی ساختن ونی ما رو برعکس که که حتی ولایت ولایت تقسیم شوید ای کار کی میکنن؟ گفت که چی خسم بکنن؟ گفت حال خوش ها که در است این کتابای ای کسافت این نظریات پس این نظریات چتل اینو رو ماچتو کرن در اون رو گذامی پوش کی هست که در کالای لابی افتخار میکنن؟ در افغانستان نبرد تکرار لامین هم که کس ارزش نداره اهمیت نداره شخصیت نداره فرهنگ خود ترک میکنه با فرهنگ خارجی کلی خود مثل خارجی ها رو جور میکنه و روز مثل خارجی ها رو جور میکنه داماتش مثل وندو و مثل وندو به این که مردم که همیشه ناشمر دلدل کی پايسا اکثرت اکثریت ساحتاری دنیاست که باز به خاطر پايسا این چه نفرارا پیدا میکنن مسلمانای ضعیف پیدا را مثل مرای بیا عقیگر را پیداکن مثل مرای که قرآن درستنا مینشدن می را پیدا, پیدا بکنن و در بی از نوع اینینی حرکات های قوی اینی حرک های و اینی حرکات را پیدا بکنین بربر عزیز ما به خاطر ازیم مییم که مسئولیت ماست خدا میگه ان نع ک که اندنله میت خاک کامپراتستان ز بیاات پشتونای میتر میگن کامفررات میگند که پشتور بتر است تاکای کامپرات میگن اییان که تازید بهتر است خو که میگن کہ با از باکای کانفرنس میگن که از بهتر است من اکرمکم الله و میگن الله صحیح مسلمان چرین جون عقیده درست داشته با ما حسین ما سادوی جانت نکابل یعنی بایین که وطن خوده خاطر خدا کار بکرین در یک رای را در بخاطر وطن خود خودمان کار بکرین تا که این به وطن خوده به این وی ور به خانه گرهگر جوه باشه کنان گرهگر خانه مفض داره تل کرین اگر به وطن جور میشه که از رئیس جمهور گرفته تا عضو پارلمان کل ما جذاب می شرم است خودمون جور کنیم باید وطن خودمون باید استقلال خودت داشته باشیم باید کوهت خودت داشته باشیم باید ایمان خودت داشته باشیم چه قسم می تونیم که خدا داشته باشیم چه قسم ایمان داشته ایماندار باشیم چه قسم مسلمان درست باشیم تا که مسئولیت برادر زندگی بکنیم با خدا که لا اله الا الله ما شمار جام نکنه هیچ چیزی دیگه جام کرده نمیتونه و چیزی که معوذ ما را انجام داد ما الوه الا الله محمد رسول الله خداوند متعال به خطاب به کابینه خود وقتی که یکلت لث صحابه کرام در مقابلش میشیش برمی که ای مردم ایوه ناس ای مردم کن نرات الغنمی فراموش نکن او وزیره او والی صاحبه او مشاوره فراموش نکنیم که ما و شما گلچهان و بودیم ما عزت مار میگه که ما خودم گلد پنچران بودیم کن نرات الغنمی ما دوست بودیم فا اسبحنا به نعمت الاسلام قدت العالمی دو به نعمت اسلام رهبرای برای جهان شدیم از اطوال دور است که ما امپراتوری رستم. ما توانستم که ما توانستم که مثلا فورت امپراتوری فورت شکست بدم. ما توانستم که رستم را یازگر بشه کشته بدم. اسکرایب ما توانست با چی بود؟ بنیامات اسلام بود. اولین شکستی برا را که مسلمانان بر خیر بر کافرها داد، گفت شاندوب قرآن نازل شد. بعد از جنگ بدر مبارزه دادم که ای محمد و ما را می تا ادرا می تا الله را زدن شما نبود شما حسین صد و سه نفر بودین کم داشتین اس نبوشین عجیب بیکاره بودین چطور دونستین که ابو جهل طرف دای ابو جهل زمین نماتین و تک تک نشون بکنین خداوند که یانه را میت اذر میت ولكن الله رم این زدن دوران شما نبود زدن خدا بود از این خاطر میدیدن که یک نفرا یا کافر میدیدن که وقتی شمشیر خورده که استشش جتو تا چرا که خداوند کارهای ملاک کرده پیغمبر دست خدا بالا کرد و از دست خداوند برش ملاک که از اورها ملاک کرده وان کرد ملاک که همه مسلمان ها دادن. وقتی که انسان با خدا باشه ملاک یس با ما را جذب دین خدا با ما را ایمان با ما را باشه از خاطر مسلمانی بشه اگر کنپرسی کنیم دتای ما شیطان می باشه در وجود شیطان قوای خیلی قوای شر و شیطان از دو وجود دارد وقتی که یک نفر شور کنپرسیده شيطان بر ملائکه نے کہ دیا کہ دیا دے اینے دیا دے که میں سے دے گیا دیکھو قسم که بخایم بر داورش میتوں دا گوی میتو خدمت استعمار قرارش میتا گوی بر وطن پروسی اور ماؤدش میتا دا گوی دے بس اینے نہیں نظر بس ببینیں سابوتر نو کاو کاو کاو کاو ام لو دے امر و قبدہ سنت دنباله ما که تلاش کرده بالاخره باعث مشوشایش که کات کات سیخار چیز میکردن اینی قسم خداوند ذلیل میکنه انسان ها ما باید از اینجا درس عبرت بگیریم باید به با خاطر ازی عقیده خدا جور بکنید با خدا که روزانه که صدرکات نماز نافله بقره و یا اقدی زد با اقدی قرانی باشه کل نمازش نابلیت نابود نشه مگر که خدا قبول نمیکنه از به خاطر قبولی عملتان با خدا که یک نفر روز یک ختم بکنه که عقیدش خراب باشه عقیده کم فرستی داشته باشی یک رکاب نمازشه یک دوست ختمان بکنه نفس خبان بکشه بگه اون دو اون دو سای خوبان عزی خاطر انسان باید عقیده قرآنی داشته باشه عقیده قرآنی چی که هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله اونش شرف داره هر کسی که به خودش اونم شرف داره هر کسی که ولو یک زمزمه کلمه قنا برادر ماوت میشه ولو یک زمزمه کلمه قنا برادر ماوت میشه حالا از آمریکایی لا اله الا الله بگو برادر ماوت از عزی خاطر مردم مسلمان کوشش بکنیم که بدस्ते خود وطن خود خراب نکنیم بدस्ते خود ملت خود خراب نکنیم بدस्ते مسلمان را به اینا و با اونا نکشین به خود خود خوده وسیله برای دگرها نسازین مثل که نیشنالست ها و قلفرست ها در ترکیه و در اونجا در بین عرب ها زدن اتحاد کشورهای اسلامی را از بین یا این روز باید هم دشمن های اسلام کوشش میکنن که یک تعداد این ها را بخره اونا را پشتیبانی بکنه کتاب های زشت را چاب بکنه كتبا که یکی چوب می دن با زبان زباط چرا اصلا اون قونبراستا یک کار نداره میخواد که مثلا تو برای او شوت میکنه تو برای او شوت میکنه از از از, از احساسات جوانان استفاده میکنن من فکر میکردم که جوانان ما آل روشن هستند جوانان افغانستان آل همه چیزو در کردن مسلمانان و همه چیزو درک کردن ما مسلمانها برادروار در تالیا که دیگه زندگی میکنیم از خاک و از وطن و از ایمان خود دفاع میکنیم خداوند متعال جل و ما را توفیق نصیب بکره پروردگارا خدایان متعال جل جلاله خاصهت خدا تو را راهنمایی بکو خدا تو مرا هدایت بگو تا از کافر هستی خدا دور بسازم خدا تو مرا به معنای قرآن که ان اقره بکمند الله ات قاکم است تو را قائد به فکر در اندیشه و سالم و ثابت و راهنما در خدا هر که به خاطر افغانستان کار میکنه به خاطر شکست افغانستان کار میکنه به خاطر گلمسازی مردم افغانستان کار میکنه در هر جایی که باشه و هر که باشه خدا اگر قابل هدایت است به کو و اگر قابل هدایت نیست مثل کسانی که ثابت کراکی و کارمل و نورمؤمن و ترکی و نجیبه رسوا رسوا که بی خدا این عالم رسوا اید بگه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه